و نزدیشودن روز عید زنها میگن که ماار نمی ماار نمیبرند بازار به نهایی زبان باز کردند که این تسوتات بیجا از طرف آقایان است و کار محدیت میدن. او, او حالی خانوار بازار نمیبره. الله میگه و کار نفیب یوت کنم. خونها بشینید. خونها بشینید. مانند در زمان جاهلی بازارها نمیدهد. و رب رببرالیم فرماید که قل المومینی یا غضب نبیند صاره این. و ممنونیم چشمها رفاین. و جلوتر هم به خانوما و کل لومنا یا غضب نبیند صاره این. اون هم چشمها رفاین بگیره. اگر این چشم رفاین بگیره، اون هم چشم رفاین بگیره، خونه بیشینه، هم دیگر رو نمی بینه. این امر الله رب العالمینه. این که خانوم بیاد و یه ورگی بالا پشت سر بیا بیاندازه، چشمها صورت بزنه، یه نیم رухیان بیرون بکنه، و یه کفش بلندی حالا داخل بازار رجی بره. از اول خیابون تا آخری خیابون ها رد پایش میره. این هم کار کار شیطانی شیطان میگه من اونها رو با صداها، اونها رو جلب میکنم، جلب توجه میکنم با حالایی که میذ نقاب پشت سر میرن داخل بازار رجومی رای نهای ممنوع هستن نیست. اگر کسی نبود، اگر کسی نبود، مرد داخل فونه نبود، و نیاز شدید هم بود بعد در سراغ خانم بره میتونه بر رفع نیاز خودش بره با حجاب کامل نه با عطر اگه عطر بزنه این خانوم که در زنا مبتلاهی نبی کریم فرمودند که خانوم که از خون بیرون اومد استشف عش شیطان شیطان او رو خود در, در کنترل خود میگیره اینجوری نگاه میکنه شیطان یا مردم را ما میکنه وقتی خانم میره بیرون استشف عش شیطان شیطان در کنترل شیطان هست اینجوری بهش نگاه میکنه شیطان به هر حال، پس اینها تعصب نیستن، اینها دارن برای حفظ سلامتی ایمان خود خانم هست و ایمان دیگران هست و برای دیگران باشکه درست میکنن، به هر حال اگر نیاز شدید هست، نیاز شدید هست و هیچ کس همینی زن این سوره بیتونه او رو برن، بدون نیاز بردن خانم جایز نیست